داوازدهم از زمان سفر استفاده سازنده کنید دو شکل عمده سفر رانندگی و سفر با هواپیماست شما باید زمان‌های جابجایی در هر دو شکل رو تبدیل به زمان‌های بسیار سازنده بکنید همیشه موقع رانندگی به برنامه‌های صوتی آموزشی گوش کنید هر شخصی به طور متوسط هر سال بین 500 تا هزار ساعت در ماشینش میشینه این زمان مساوی یک تا دو ترم دانشگاهی تمام وقته کارشناسان دانشگاه کالیفرنیای جنوبی اخیراً پی بردند که فقط با گوش دادن به برنامه های آموزشی صوتی در زمانی که رانندگی می‌کنید، میتونید معادل ارزش آموزشی تحصیل تمام وقت در دانشگاه رو کسب کنید. ماشینتون رو تبدیل به یک دانشگاه متحرک کنید. اون رو در تمام دوران کاریتون به چشم یک دستگاه یادگیری ببینید. خیلی افراد با یادگیری از برنامههای صوتی بسیار مطلع شده و به رأس رشته کاریشون رسیدند. شما هم باید همین کار رو بکنید باید تصمیم بگیرید که از امروز به بعد ماشینتون هیچ وقت بدون پخش یک برنامه آموزشی حرکت نکنه وقتی با هواپیما سفر میکنید هم باید از این زمان استفاده سازنده بکنید کارشناسان مدیریت زمان پی بردن که هر ساعت کار در هواپیما معادل سه ساعت کار در یک دفتر شلوقه دلیلش اینه که میتونید در این مدت بدون وقفه و مزاحمت کار کنید. البته به شرطی که از قبل برای اون برنامه ریزی و سازماندهی کرده باشید. به هر پرواز به چشم فرصتی برای کار کردن و بالا بردن کاراییتون نگاه کنید. از پیش برای سفرتون برنامه ریزی کنید. برای کارتون زمان بندی کنید. برای چیزایی که حین پرواز به انجام خواهید رسوند یک دستور کار بنویسید. بعد با دقت وسایل سفر رو بردارید تا مطمئن بشید برای تبدیل اون به یک پرواز با ارزش همه ی چیزهای لازم رو دارید. وقتی پرواز دارید زود به فرودگاه برید و 45 تا 6 دقیقه قبل از پرواز اونجا باشید. به این صورت میتونید با آرامش کامل و با ذهن راحت و آسوده سوار هواپیما بشید و به محض اینکه هواپیما پرواز کنه آماده ی شروع به کار هستید. وقتی هواپیما برخاست میتونید میزتون رو باز کنید. وسایلتون رو در بیارید و بلافاصله مشغول بشید. در برابر این وسوسه مقاومت کنید که مجله موجود در هواپیما رو بخونید یا فیلمی که در پروازهای طولانی مدت پخش میشه رو نگاه کنید. هیچ نوشیدنی الکلی هم نخورید. به جاش برای هر یک ساعتی که در حال پرواز هستید دو لیوان آب بخورید. این کار شما رو هوشیارتر و سر نگه میداره و به نحو چشمگیری خستگی و بد شدن ناشی از پروازهای طولانی رو کم می‌کنه. اینم یک قانون آخر برای سفر. در پرواز رفت باید روی فعالیت های مهمی کار کنید که احتیاج به انرژی و تمرکز دارن. در پرواز برگشت که خسته اید و ممکنه به اندازه اول روز حشیار نباشید، کتاب و مجله بخوانید. در هر حال از هر لحظه استفاده ببرید. از اون ادمایی نباشید که موقع رانندگی به رادیو گوش می کنند یا بعد از سوار شدن به هواپیما در تمام مسیر فقط می نوشند و از پنجره بیرون را نگاه می ماشینتون رو به یک کلاس درس متحرک تبدیل کنید صندلیتون رو در هواپیما هم تبدیل به یک دفتر کار پرنده بکنید از هر دوی اونها استفاده بکنید تا در کارتون جلو بیافتید و جلو بمانید